بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازه مکربان نهایت باره ای پیامبر، از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن دانا او با حکمت است و چیزی را که از جانب پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن بیگمان خدا و آنچه میکنید است. و بر خدا توکل کن و خدا به حیث وکیل بسنده است خداوند برای هیچ کسی دو دل در داخل وجود او قرار نداده است و نه زنان شما را که مادر می خانید مادر شما گردانیده است و نه پسر خواندگان شما را پسران شما گردانیده است این سخن شماست که به دهن خود می گوید و خداوند حقیقت را می گوید و او راه را نشان می دهد ایشان را به نام پدرانشان بخوانید. این در نظر خدا منصفانهتر است اگر نام پدرانشان را نمی در آن صورت برادران دینی شما و دوستان شمایند بر شما گناهی نیست اگر در زمینه خطا کرده باشید مگر در صورتی که دلهای شما قصدن این گناه را مرتکب شود قابل اندیشه است در آن حال نیز خداوند آمرزگار و مهربان است بایانبر به با مؤمنان از خودشان نیز سزاوارتر است و زنان او مادرانشان هستند خیشاوندان بعضشان و بعضی دیگرشان در حکم خدا نسبت به آن اده مؤمنان و مهاجران که با آنها عقد برادری بستان سزاوارترند مگر این که به دوستان خود نیکویی کنید این حکم در کتاب نوشته شده است و با یاد آور چون از پیامبران عهدشان را گرفتیم و از تو نیز و از نوح ابراهیم موسی و عیسی پسر مریم از ایشان عهد محکم گرفتیم تا خداوند صادقان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذاب دردناک را آماده کرده است ای مسلمانان نعمت خدا را بر خود به خاطر آورید هنگامی که بر شما لشکر‌های آمدند پس بر ایشان باده و لشکرهای فرستادیم که آنها را دیدن نمی و خداوند و آن چی می کنید بیناست چون لشکرهای دشمن بر شما از قسمتهای فراز شما و از قسمتهای نشه به شما آمدن و چون چشمها خیره شدند و دلها تا گلوها رسید و در مورد خداوند گمانهای گناگون به خاطر شما خطور کرد در اینجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و شدیدن تکان داده شدند. و یاد در هنگامی را که منافقان و آنانی که در دلهاشان است گفتند خداوند و پیامبر او جز فریب را با ما وعده ندادند. و آن وقت را بیا دارید که طایفه از ایشان گفتند ای اهلی اصریب در اینجا برای شما جای نیست پس برگردید و گروهی از ایشان از پیامبر اجازه خواستند و می گفتند براستی خانه‌های ما بی مانده است در حالی که بی نمانده بود ایشان جز فرار چیزی نمی اگر بر ایشان از قسمتهای متعدد مدینه آشوبگران وارد می شد و از ایشان خواسته می شد که فتنه انگیزی کنند واقعا آن, آن کار را می و در این کار جز اندکی درنگ نمی کردن. ایشان پیش از این نیز با خدا عهد بسته بودند که در میدان جنگ پشت بر و از عهد خدا یقینند سوال شده نیست بگو با شما فرار فایده ندارد اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید و در این حال جز دوره کوتاهی زندگی بهرور نخواهید شد بگو کیست آنکه شما را از اینکه اراده خداوند در مورد شما عملی شود باز می دارد اگر به شما اراده بدی کند یا به شما اراده مرحمت نماید و ایشان برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی یابد. بیگمان خداوند بازدارندگان از جنگ را شما می و آنهایی را که برادران خود می گویند به سوی ما بشتابید و به جنگ نمی مگر اندکی. بر شما بخیلند یعنی از شما درید می ورزند. پس چون وقت ترس فرار می بینی که با سوی تو می نگرند و چشمشان دور می همانند کسی که مرگ بر او سایع افکنده باشد باز چون ترس از میان رفت شما را با زبانهای تیز خود نش می زنن. در حالی که بر خیر بخیلند اینها ایمان نیاوردند پس خداوند اعمال ایشان را هبه تگردانید و این کار با خداوند آسان است شانین میپندارند که قشون کافران نرفته اند و اگر این قشون دوباره بیایند آرزو میکنند کاش در صحرا و در میان فادیه نشینان میبودند و آنجا از احوال شما سوال میکردند و اگر در میان شما میبودند باز هم جنگ نمی کردند مگر اندکی برای شما واقعا رسول خدا نمونه‌ی است برای کسی که آرزوی او ثواب خداوند و روز آخرت است و خدا را بسیار یاد می و چون مسلمانان احزاب یعنی حجوم دست جمعی دشمنان را دیدند گفتند این همان چیز است که خداوند و پیانبر او به ما وعده داده بودند و خداوند و پیامبرش راست گفتند و این رویداد در ایشان جز ایمان و فرمانبری چیزی دیگری را نیفردند از مؤمنان کسانی که بر چیزی که با آن با خدا پیمان بسته آن صادق بودند بعضی از آنها زمداری خود را ادا کردند و بعضی از ایشان هنوز هم منتظرند و برویش خود تغییری ندادند تا خداوند صادقان را به صدقشان مکافات دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبهشان را بپذیرد حقاک خداوند آمر زنده و مهربان است خداوند کافران را با خشمشان بازگرداند که هیچ خیری به دست نیاوردند خداوند مؤمنان را در این مقاتله بسنده شد خداوند نیرومند و صاحب قدرت ما نیست و خداوند آن از اهل کتاب را که با لشکرهای کافران کمک کردند از قلعه هایشان پایان کرد و در دلهایشان خوف انداخت تا این که گروهی از ایشان را می و گروه را هم اسیر می گرفت و زمین شان و اموالشان را به شما میراستاد زمینی را که شما تا هنوز مورد استفاده قرار نداده اید و خداوند بر همه چیز قدرت دارد ای پیانبر به زنان خود بگو اگر زندگانی و آرایش این دنیا را می پس بیایید من شما را از آن بهرور می سازم و آنگاه شما را به شیوه نیکویی رها می کنم اما اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می جویید پس بیگمان خدا برای زنان نیکو از شما پاداش بزرگی آماده کرده است ای زنان پیامبر، اگر کسی از شما به گونه آشکاری مرتکب به عمل ناشایسته شود مجازات او دوچنده است و این کار برای خداوند آسان است و هر از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کند و عمل نیک انجام دهد ده موزد او را دوچند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا با کسی که در دلش مرز است تمع کند و سخن پسندیده بگویید. و در خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید بیگمان خداوند می خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را به و شما را پاک و پاکیزه سازد آنچه با شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خانده می شود آن را به یاد گیرید بیگمان خدا لطف و آگاه است واقعا مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان مؤمن و زنان مؤمن مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، بردار مردان صادق و زنان صادق مردان صابر و زنان صابر مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که ذکر خدا را بیشار می کنند و زنانی که ذکر خدا را بیشار می کنند خداون برای همه اینها آمرزش و مزد بزرگی را آماده کرده است چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن جایز نیست که در امر خیش اختیاری داشته باشند اگر کسی خداوند و رسول او را نافرمانی کند او واقعا به گونه آشکار گمراه شده است و بیاد آور چون به کسی که خدا بر وی احسان کرده است و تو نیز بر وی احسان نموده گفتی زن خود را در قید نکاح خیش برای خود نگهدار و از خداوند بترس و تو چیزی را در دل خیش پنهان داشتی که خداوند آن را آشکار سازنده است و از مردم می ترسی در حالی که خداوند سزاورتر است تا از او بترسی پس چون زید از یعنی زینب یافت او را به نکاح تو در آوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با زنان فرزند خانده هر نباشد هرگاه فرزند ها از آن زنان کام گرفته باشند و حکم خداوند حتما بجا آورده شده نیست بر پیامبر در بجا آوردن آنچه خداوند بر او فرض گردانیده حرجی نیست این سنت خداست در میان کسانی که پیش از این گذشتند و حکم خداوندی تقدیر است که مقرر شده است در میان آنهایی که پیامهای خدا را می و تنها از او می و از هیچ کس جز خدا نمی ترسیدند و خداوند در حساب گرفتن بسنده است محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولیکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز داناست است ای مسلمانان خدا را به یاد کردن بسیار یاد کنی و او را صبح و شام و پاکی بخوانید اوست که بر شما درود می‌فرستد و نیز فرشتگان او تا شما را از تاریکی ها به روشنایی برارت و خدا به مؤمنان مهربان است تحییت ایشان روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و برای ایشان مزد گرامی آماده کرده است ای پیامبر، حقا که ما تو را به حیث گواهی و مجددهنده و بیمدهنده فرستادیم و نیز به حیث دعوتگری به سوی خدا و به اجازه او و به حیث چراغ درخشان و مؤمنان را به این مجده بده که برایشان از جانب خدا فضل بزرگی ارزانی شده است کافران و منافقان را پیروی مکن ازیتشان را به دل مگیر بر خداوند توکل کن و خداوند به حیث کار بسنده است ای مسلمانان وقتی که شما زنان مسلمان را به نکاح می میگیرید و آنگاه ایشان را پیش از اینکه از آنها کام بگیرید طلاق می دهید به شما بر ایشان عده نیست که آن را بشمارید پس به ایشان مال و مطای بدهید و ایشان را به طریق پسندیده آزاد گذارید ای پیامبر ما به تو زنان تو را که به ایشان مهرشان را داده ای حلال گردانیدیم و نیز آنانی را که مالکشان شدهی از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران عمهای های تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله های تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمانی را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند همه اینها را به تو حلال گردانیدیم این حکم خاص برای توست نه برای همه مسلمانان بگمان آنچرا برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم میدانیم تا برای تو مشکل نباشد و خداوند آمر زنده و مهربان است هر کی را از ایشان که بخواهی میتوانی از خود بازداری و هرکی را بخواهی میتوانی نزد خود جای دهی و کسی را که بخواهی از آنهایی که از خود دور ساختی نیز میتوانی به خود نزدیک گردانی و بر تو هیچ گناهی نیست این کار بهتر میتواند موجبات خوشنودی ایشان را فراهم سازد و آنها را از اندوه بر کنار گرداند و با آنچه تو با همه ایشان میدهی شوند. خداوند به چیزی که در دلهای شما است آگاه می باشند و خداوند دانا و صاحب حلم است برای تو بعد از این گرفتن زنان دیگر حلال نیست و نمی توانی با آنان زنان دیگر را تبدیل نمایی اگرچه شفته نشان شوی مگر زنانی که آنها را مالک می شوی خداوند به هر چیز نگهبان است برای مسلمانان با خانه های پیامبر داخل نشوید مگر هنگامی که بتعام برای شما اجازه داده شود پیشتر نیایید با انتظار پخته شدن آن در آنجا دیر نپایید مگر چون دعوت شدید با خانه داخل شوید و باز چون طعام را خوردید پراگنده شوید با صحبت در آنجا منشینید و واقعاً این کار پیامبر را ازیت می کند از شما شرم مینماید و خداوند از حق شرم نمی کند و اگر از زنان پیامبر چیزی را می از پس پرده بپرسید این رویه پاکتر است هم به های شما و هم به دلهای ایشان برای شما جایز نیست که پیامبر خدا را برنجانید و نه هم اینکه هرگز زنان او را پس از وی به گیرید براستی که این کار در نزد خدا گناهی بزرگ است اگر چیزی را آشکار سازید یا آن را پنهان دارید خدا بر هر چیز داناست بر این زنان یعنی ازواج متحرات نه در پدرانشان، نه در بچه هایشان نه در برادرانشان، نه در بچه های برادرانشان نه در بچه های نه در زنانشان، نه در بردگانی که آنها را مالک شده اند در هیچ یک از اینها گناهی نیست اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت کنند از خدا بترسید خداوند بر هر چیز گواه است خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند. ای مسلمانان بر درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دهید بی آنانی که خداوند و پیامبر او را می رنجانند خدا ایشان را در دنیا و در آخرت لعنت کرده است و برای ایشان عذاب رسوکننده را آماده ساخته است و آنانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی سبب میرن جانند بگمان و گناهی بزرگی را متحمل شدند پیامبر، به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو که قسمت از خود را برخیشتن بپوشند این وسیله مناسب است به اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده زنده و مهربان است اگر منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماریست و آشوبگران مدینه خودداری نورزند یقیناً تو را بر ایشان چیره می سازیم. و سپس در آنجا جز دوره محدود همسایه تو نخواهند بود اینها لعنت شدگانند در هر جایی که یافت شوند گرفتار می شوند و به شدت کشته می شوند. این از سنت خدا از دیر باس در میان کسانی که پیشتر بودند و برای سنت خداوند هرگز تبدیلی نمیابی مردم از تو از کامت میپرسند بگو علم آن تنها در نظر خداوند است و تو چی میدانی شاید قیامت نزدیک باشد بگمان خدا کافران را لعنت کرده و برای ایشان آتش سوزانی را آماده کرده است در آنجا همیشه و به گونه ابدی به سر میبرند در آنجا نه دوستی میابند و نه هم مددگاری روزی که رویهایشان در آتش زیر رو می شود می گویند ای کاش که ما از خدا فرمان می بردیم و از رسول فرمان می بردیم و می گویند پروردگارا ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ولی ایشان ما را گمراه ساختند ای پروردگار ما برایشان دوچند این عذاب را بدی و ایشان را به لعنت بزرگ روبرو گردان ای مسلمانان مانند آنان ما که موسی را رنجانیدند ولی خداوند او را از آن گفتاری به حقیقتشان براعت بخشید و او در نزد خداوند آبرومند است ای مسلمانان از خدا بترسید و همواره سخن درست بگویید تا اعمال شما را به صلاح آرد و گناهان شما را بیامرزد و هر که از خداوند و پیامبر او فرمان برد بیگمان به بزرگترین پیروزی دست یافته است ما امانت را به آسمانها زمین و کوها عرضه کردیم اما آنها از قبول آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن را به آهده گرفت او واقعا بسیار ظالم و بسیار نادان است تا خداوند مردان منافق و زنان منافق مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند مردان و زنان مؤمن را مورد مرحمت خیش قرار دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است